های شهر روی تابلوه بزرگی نوشته شده بود، تبریز و با خط اشاره بیابان را نشان داده بود. بیابانی که جاده را در دل سیاه خود میبلید. زیر تابلو ایستاد: ساکش را زمین گذاشت و به ماشین باری که از شهر بیرون میآدند و به طرف تبریز میرفتند دست بلند کرد. اما آنها نمی استادند. با سرعت از پیش پایش میگذشتند و باد سردشان که همراه با بوی آزار دهنده بنزین بود، او را در هم میپیچید. آن وقت آنقدر پشت سر ماشین نگاه می کرد که دیگر چراغهای قرمزش هم دیده نمیشد. وقتی سکوت میشد پارس سک ها بلندتر به گوش می رسید. زوزه میکشیدند. صدایشان توی بیابان خالی می پیچید، جایی پشیمان میشد که چرا از شهر بیرون آمده و کاش همانجا میماند ماند. نمانده بود. آمده بود و زیر تابلو تبریز ایستاده بود تا شاید ماشینی بیاید و سوارش کند. اما میلرزید. نزدیک بود دندانهایش هم به هم بخورد. تعجب کرد. اگرچه صفرهای سفید برف هنوز زمین بود و هنوز باد سرد می‌وزید. و هنوز همان لباس نامناسب نچندان گرم تنش بود با این حال نباید آنقدر میلرزید هوا چندان سرد نبود که سوز آن او را بلرزاند اما او میلرزید از سرما از تنهایی از قربت از نمیخواست قبول کند که بیشتر از ترس میلرزد تا سرما ترسید از تاریکی، از وسعت صحرا از تنهای خود و سایه یا سایه هایی که احساس می کرد در دل تاریکی در هم می لولند. گاهی به اون نزدیک و زمانی دور می شوند. چند بار پلکایش را محکم روی هم فشرد و باز کرد جز همان تاریکی و اشباه سرگردان چیز دیگری دیده نمیشد. از پایه تابلو جدا شده و روی آسفالت جاده ایستاد. احساس کرد صدایی پشت سرش میشنود. برفهای برخ یخزده آهسته می شکنند و خرد می شود. باز هم موجی از سرما به همراه لرزههای شدید به او حجوم آورد. آهسته و نگاه کرد. ایستاده بود و چشمهایش برق میزد. کمی بعد احساس کرد در چند برای آن نگاه سرد و منجمت کننده منده بود از و پا زند. صدای ماشین او را به خود آورد. کامیونی از شهر بیرون آمده بود و به او نزدیک می شد. نور چراغ ماشین تابلو را روشن کرده بود به وسط جاده پرید و هر دو دستش را بلند کرده و در حواته با شتاب، با حول و حراس، با التجا و التماس می خواست هر طور شده ماشین بیستد، پیش پایش بیستد دو ستون نور او تابید کامیون نزدیک بود چراغهای های کوچک و رنگی شاخک های بالای بالا دیده میشد. با سرعت آمده و با سرعت از مقابل او گذشت و مثل همه ماشین های دیگر بادش که آغشته به بوی بنزین بود او را گرفت. سرد و گزنده. با حسرت به نور چراغهای قرمز پشتیاش نگاه کرد. از توقف ماشین ناامید شده بود اما احساس کرد از سرعت آن کم میشود. کمی بعد کامیون کنار جاده ایستاد خوشحال شد ساکش را برداشت و با سرعت دوید در همان حال صدای پایی از پشت سر شنید برگشت و نگاه کرد به نظرش خودش بود شبهی از جنس تاریکی و خوف با همان نگاه‌های سرد و سهمگین تونتر دوید و خودش را به کامیون رساند دستگیره را گرفت و در باز شد پرید روی رکاب و خود را انداخت روی صندلی وقتی در را بست، سلام داد. اما منتظر جواب نماند. شیشه را پایین کشید و سرش را بیرون برد و به پشت پامیون نگاه کرد. آنجا بود، شانه خاکی جاده. ایستاده بود و نگاه می کرد. ماشین را افتاد. اسمایل شیشه را بالا کشید و نفس نفس زنان گفت خیلی ممنون. اتاقک تاریک بود. راننده نگاهش را دوخته بود به جاده. دست شما درد نکنه میخوام برم تبریز راننده از آینه بغل به پشت نگاه میکرد گویی چیزی دیده بود یا این صدایش میکرد بالای سرش شمایل بقی بود خاکی و خاموش گوشه آن پنجه خونین بود ماشین سرعت گرفت راننده جا جا شد و پرسید این وقت شب بیرون شهر چیکار کار میکنی؟ صدایش آشنا بود دلم گرفته بود دیگه نمیتونستم بمونم. راننده با تعجب نگاهش کرد. روز امون نیستیم چه برسه به شب؟ چهره هم آشنا بود. به جای جواب با دقت نگاهش کرد. اما اتاقک خیلی روشن نبود. میترسید اشتباه کرده باشد. شبیه کسی بود کسی که دیده بود اما نمیدانست کی و کجا؟ بیابان تاریک بود و جاده خلوت بوته های خشکیده باب آدم، خارشتر های بیبرگ و صفره های یخبسته برف همه به عقب می‌گریختند. گریختند و کوه اطراف گاهی به صورت اشباه خوفناک و گول خفته به نظر می رسیدند. یاد کودکی هایش افتاد رفته بودند مسافرت، سوار اتوبوس بودند، مثل حالا شب بود جادهی خاکی، کوه ها و صخره ها به نظرش دیوهای کمین کرده در اطراف جاده بودند. ماشین هی خراب میشد، از نفس می افتاد. راننده از بود، فوش می اتوبوس راه می افتاد و کمی بعد دوباره پت پت خاموش می شد و می ایستاد. آخر سر راننده بلند شد و دست را به کمر زد و رو به مسافران نگاه کرد و بعد با انگشت یکی را که عقب نشسته بود نشان داد و گفت: تو پیاده شد. سرها به عقب برگشت او هم نگاه کرد پیرمردی که امامه سیاهی سرش بسته بود گفت من آقای شوفر؟ آره همین تو پیاده شد تا ماشین خراب نشه مگه من چیکار میکنم؟ اینقدر منمن من نکن بیا برو پایین معطلم نکن شماها بد قدمین. سید پیر به زحمت بلند شد گونی سفیدی دستش بود آهسته از میان دو ردیف صندلی گذشت وقتی به راننده رسید گفت آقای شوفر من که کاری نکردم، این وقت شب، زود باش فس و فس نکن، برو پایین سید با پشتی خمیده پیاده شد و رفت توی تاریکی و شاگرد هم با عصبانیت در را پشت سرش بست چند نفر از مسافرها اعتراض کردند، راننده با صدای کلوفتی سرشون داد زد هرکی دلش میسوزه پیاده بشه، زود صداها خاموش شد، ماشین راه افتاد، اما او نگاهش به بیرون بود توی تاریکی شب دنبال پیرمردی میگشت که امامه سیاهی روی سرش بود و گونی سفیلی توی دستش. کمی بعد ماشین باز هم خاموش شد و آنها تا صبح آنجا ماندند و لرزیدند. تصویر آن سید پیر توی ذهنش ماند سالهای سال. همینطور طور تصویر آن راننده به خود که آمد صدای زمزمه راننده را شنید. آهسته آهسته برای خود نوحه میخواند صدای صافی داشت، گویی که تنهاست، کسی پیشش نیست. محزون و دل شکسته میخاند. از وفای اول از سخاوت و شجاعت او. صدا برایش آشنا بود، همینطور چهره او را دیده بود، همین نزدیکی ها دم غروب توی مسجد پشت بلندگو که برای آن جوان درگذشته گذشته سرایی میکرد. مداه چهره مردانه و دلشینی داشت و صدایی رساب و مقبول. اشک دور چشمای اسماعیل حلق زد. چه آرامشی موج میزد توی اتاقک این کامیون. توی این شب زمستانی تاریک در جاده این گویی بومبه است. گویی متروک. من شما رو دیدم. کجا؟ تو مسجد همین دم غروبی داشتین نوحه می برگشت و نگاهش کرد. چند لحظه به هم خیره شدند. چشم‌های هر دو خیس بود و لبخندی لرزان روی لبهایشان موج میزد. راننده سر برگرداند. میتونم یه چیزی بپرسم؟ بله. برای چی اینجوری؟ یعنی این وقت شب تنها؟ چرا؟ اسماعیل به جاده چشم دوخت. ارز کردم که باید میرفتم. خسته شده بودم. تو مسافرخونه ای جایی میخوابیدی فردا میرفتی نمیشد برای چی نمیشد نمیتونستم باید همین امشب راه می افتادم طرف تبریض خیلی خوب خودتو اذیت نکن. و دوباره سکوت شد تنها صدای یک نواخت موتور بود و تصاویر خاربونها سنوبرهای خواب زده و تاریکی شب اسماعیل سکوت را شکست غریبی خیلی بده اینطور نیست مخصوصا دم غروب موقع تاریکی هوا دل غریبا بیشتر میگیره راننده دنده معکوس کشید آه کامیون بلند شد من خیلی تو غربت موندم بندر عباس، چابهار، ایران شهر, خاش از بالا بگیر بندر ترکمن، گرگان راستی گرگان گفتی یاد گرگ افتادم یه نفر به هم گفت آمریکایی گرگ آوردن خودم هم دیدمش از نزدیک راننده برگشت و با تعجب نگاهش کرد. کجا؟ نزدیک باللی جا به هم حمله کرد. تنها بودی؟ آره تنها بودم. راننده باز هم برگشت و نگاهش کرد. خب بعد چی شد؟ هیچی به زحمت تونستم از دستش خلاص شم. قد یه گوساله بود. منم چند بار این دورو برا دیدمش. بیشتر شبا. شبا؟ آره؟ یعنی اینقدر زیادن؟ باز هم سکوت شد اسماعیل به لایه های غیرگون شب چشم دوخت دنبال شبه می شبه گرگ شنیدم اون جوانی رو که امروز ختمش بود گرگ خورده بود چند روز پیش خورد این چندومیش بود تا حالا میشناختمش. بهتر از شما نباشه خیلی خوب بود مؤمن تو قربت چیکار کار می کردی؟ با همین ماشین بودم کار می کردم. شنوماسه آجور گچ و آهک می‌زدم می این اینور بر. اونور خونه به دوش خونه به دوشه میگن یعنی من مثل قربتی یا ها، آوارها ها به خاطر یه لقمه نون شب و روز تو این بیابونا هر جا که رفتم بازم برگشتم اینجا من بچه‌ی موقانم نمیتونم زیاد دور بشم خب نرین شنیدم موقان خیلی حاصلخیزه درست شنیدی حاصلخیزه اما برای خودشون آمریکایی‌ها اسرائیلیا دربار نه برای من، نه برای تو کامیون کامیون میوه بار میزنن و مفت میبرن ما باید نگاه کنیم، قارت باغامونو تماشا کنیم اونا گرگار آوردن اینجا ول کردن به جون مردم کسی جرأت اعتراض نداره باز گرگ افتاد. شبه تیره و خوفناک او که مثل یک سایه ساکت پشت سرش میامد حالا هم وجودش را احساس میکرد سرش را به شیشه نزدیک کرد و چشم دوخت به بیابانی که دیده نمیشد. چیزی دیدی؟ چیزی دیده نمیشه. همه چو تاریکه. باز هم سکوت شد. هیچ کدام حرفی نزد. آسفالت جاده صاف و یک دست نبود. وصل پینه داشت. با چاله هایی که یخبندان های زمستان آنها را ترکانده بود. کامیون با صدای یک نواختی تاریکی را می و پیش می رفت. گاهی در هاشیه جاده خانه های خفته روستایی با پشته های علف بام ها و برق چشم های گربه ای خیره به نور دیده میشد. خانهها خیلی زود پشت سر می و باز بیابان بود و بیابان و برفی که مثل لکهی بر زمین مانده بود. در همین موقع نور چراغهای ماشین روی مردی افتاد که وسط جاده ایستاده بود و دستکان میداد. راننده زد روی ترمز و با تعجب گفت بسم الله. نصف شبی اینجا چی کار میکنه فرمان را پیچاند و ماشین افتاد توی شانه خاکی جاده و ایستاد مثل اینکه از این نظامیای آمریکایی بود نظامی آمریکایی با توقف ماشین سکوت برقرار شد تنها صدای خسته و یک نواخت موتور می آمد و اتاقک را میلرزاند همینطور طور فرمان را و دست راننده را که رویش بود اسماعیل هم لرزید راننده از آینه بغل به پشت سر نگاه کرد پس چی شد این جونور؟ جونور؟ این وقت شب آدم که بیرون نمیاد لحظات به کندی میگذشت خبری نشد اسمایل گفت برم بیرون ببینم چی شد؟ نه بیرون چشم چشمو نمیبینه در همین موقع به شیشه سمت راننده چند تقه خورد اسمایل کسی را ندید راننده جا خورد به آن طرف نگاه کرد و با دست نیم دایره ای را ترسیم کرد و گفت از اون طرف، از اون طرف، بغل من که جانیست. و سمت شاگرد را نشان داد. چند لحظه بعد مردی که قدی بلند و نیمتنه ای نظامی داشت، از جلو ماشین رد شد و به طرفی که اسماعیل نشسته بود آمد. راننده زیر لب گفت. نگاه، گول بیابونی که میگن همینه. دستگیره چرخید، در باز شد. با تنوره کشید و مرد سر و گردنش را خماند خودش را انداخت تو، همزمان با نشستن روی صندلی در راه هم بست. اسمایل خودش را کشید طرف راننده تا بدنش به او نخورد. مرد همین که جاگیر شد برگشت نگاهشان کرد. صورت کشیده و پوه تیزی داشت. با صدای دورگه و خشتاری گفت: هیچکس نبود. راننده آهسته ماشین را کشید وسط جده و سط جاده او گفت: مگه میخواستی کسی هم باشه؟ مرد خازهی بلندی کشید. دهان بزرگی داشت و دندانهای درشت. بخار غلیزی توی اتاقک پیچید و صدای عجیبی از گلویش بیرون آمد. راننده گفت. مستر سلام ندادی؟ ها؟ نگفتی با این وزین طرف چیکار چی چیکار؟ میکنی؟ چی میدویدم. ورزش. نمیترسیدی؟ ترس؟ آره ترس، سرما، گرگ. گرگ؟ کوسخند زد و به اسمایل نگاه کرد ناگهان سرما در سر تا سر بدنش پخ شد لرزید راننده گفت مثل چطور متوری میگذره؟ میگذره؟ مرد با همان صدای خشدار به جای جواب خندید چند قطره آب روی موهای بلند و خاکستری چانش جاری شد جلوتر جاده میپیچید راننده هم کم کم فرمان را پیچاند ماشین یکوری شد مرد سنگینیش افتاد روی بدن اسماعیل بوی پشم خیس شده میداد دست انداخت و قاب زانوی او را میان پنجهاش گرفت و فشرد و گفت چه هوای خوبی احساس کرد قاب زانویش کنده میشود از شدت درد میخواست فریاد بکشد دست انداخت و مچ مرد را گرفت و محکم کشید تا بلك قاب زانویش را از چندبرهی انگشتان او خلاص کند. اما نتوانست نگاهشان به هم گره خورد احساس کرد این چشمها را در جایی دیده راننده دوباره شروع به زمزمه کرد باز هم از کربلا خواند و مصائب عباس مرد سرخماند و با تعجب به دهان راننده نگاه کرد اسماعیل توانست زانویش را از چند انگشتان را او رها کند و چند بار آن را مالش بدهد آرام آرام صدای راننده اوج می‌گرفت و همراه با صدای موتور ماشین در اتاقک میپیچید مرد خیره مانده بود به او، با شگفنی گوش می کرد چند دقیقه بعد او هم خواندنش گرفت و دوپایش را محکم به کف اتاق می کوبید و با کف دست به داشورد جلو می زد و بعد صداهای نامفهومی از گلویش در می که گاهی شبیه زوزه بود راننده ساکت شده از زیر چشم با تعجب به مرد نگاه کرد برف شروع به باریدن کرد ناگهان و بیخبر. گویی که لحافی پاره شده باشد و دانه های پنبه از درزان سرازیر شود کم, کم دید راننده کم شد. ناچار برف فکنها را به کار انداخت. دانه برف مقابل نور چراغ چرخ میخوردند و مثل پروانه خود را به شیشه میزدند مرد سر گردنش را با حرکت برف فکن بکار انداخت. اسمایل باز هم خودش را کشید طرف راننده تا جا برای جست وخیز او باز باشد. سرعت ماشین کم شد راننده با عجله دنده ها را جابجا و جا روی پدال گاز فشار داد ولی ماشین از نفس افتاده بود و سرعتش هر لحظه کم و کم تر می شد. راننده فرمان را به راست بیشان و ماشین را کشید به شانه خاکی جده اسمایل به صفحات مدرج روبروی راننده نگاه کرد و پرسید بنزینش تموم شده؟ نه فکر نمی کنم پس چی؟ نمیدونم این که چیزیش نبود ماشین متوقف شد مرد با صدای بلندی گفت او oh, پارکینگ راننده گفت آره اول پارکینگ بعدم پیکنیک در را باز کرد و پرید پایین موجی از هوای سرد و گزنده همراه با ریزدانه های پریشان برف به درون اتاقک هجوم حجوم آوردند مرد دیگر آرام بود نه صدایی از گلویش در می آورد و نه دست و پاتکان هم اما خنده موزیانه ای در چهره و نگاهش موج میزد اسماعیل منتظر بود تا مرد پیاده شود تا او هم پشت سرش برای کمک به راننده پایین برود اما همچنان نشسته بود و با شعف به بارش برف نگاه میکرد و لبخند میزد ناچار اسماعیل از سمت شوفر پیاده شد باد سرد پنجه انداخت توی صورتش و نفسش را حبس کرد پیچید جلو ماشین راننده رفته بود، روی سپر و کاپوت را زده بود، بالا و سرش را فرو برده بودن زیر. پرسید، چیزی معلومه؟ راننده گفت، نه، نمیدونم چه مرگش شده. با تو کشید و پرده های سفید برف را مثل کلاف به هم می پیچید. باز هم صدای راننده شنیده شد. خیلی تاریکه، خوب نمیتونم ببینم. اسماعیل دست را به هم مالید و گفت، چرا قوه چیزی داری برم بیارم؟ آره آره دارم کجاست؟ راننده سرش را از زیر کاپوت بیرون آورد و چند لحظه مکس کرد و گفت تو نمیتونی پیداش کنی خودم میرم از روی سپر پرید پایین پیچید سمت در آن را باز کرد و رفت توی اتاقک اسمایل ایستاده بود و پا به پا می کرد چند متر آن طرفتر از ماشین کولاک بود جایی جز کلاف برف دیده نمی شد کمی بعد راننده از رکاب پایین آمد پیدا شد؟ آره پیداش کردم برای امتحان روشن خاموشش کرد و رفت بالای سپر آن را زیر سخف کاپوت بند کرد تا نورش بیفتد به موتور. بعد هم مشغول وارسی سیمها و سفت کردن پیچها شد بعد از معاینه موتور گفت میتونه روشنش کنی؟ نه نمیتونم خیلی خوب خودم میرم دوباره پرید و چابک خودش را انداخت توی اتاقک و پشت فرمان نشست با اولین استارت ماشین روشن شد و قرارید. صدایش به گوش اسماعیل خوشایند بود. خیالش راحت شد که در بیابان نخواهند ماند. رفت طرف دیگر کامیون سوار شد اما از تصور اینکه در کنار آن مرد بنشیند آزرده بود. خواست در را باز کند که دید باز است. وقتی پا روی رکاب گذاشت و خودش را بالا کشید، جز راننده کس دیگری توی اتاقک نبود. با تعجب پرسید پس این یارو کجاست؟ نمیدونم. وقتی اومدم پایین با هم بودیم؟ اسمایل گفت من اومدم پایین نشسته بود من اومدم بالا نبود یعنی چی؟ کجا رفته؟ راننده سعی کرد در آینه او را ببیند ولی تاریکی و کولاک اجازه نمیداد. اسماعیل گفت برم پشت ماشین نگاه کنم؟ پایین نرو، الان فصل عروسی گرگاست و خودش میله ای را از کف اتاقک برداشت و در را باز کرد و رفت پایین کمی بعد صدایش شنیده شد آهای مستر کجایی صدایش را کولاک با خود به قلب تاریکی میبرد آهای آهای ما رفتیم آ باد شلاخ کش میپزید های برف فوج فوج در هوا میپیچیدند و بر زمین میچسبیدند راننده پرید توی اتاقک نفس نفس میزد با دو دست برفهای چسبیده به سر و صورتش را تکاند خفه شده مجب برفی خدا کنه جاده بسته نشه اسمایل پرسید پیداش نبود؟ نه نمیدونم کدوم گوری رفت بیشور نه خبری نه خداحافظی دور از شما مثل گاف سرش پایین انداخته و گذاشته رفته حرفهایش را که زد ماشین را راه انداخت و سنگین کشید وسط جاده. وقتی سرعت گرفت پرواز دانه‌های برف هم بیشتر شد. یه و گول می‌آمدند به خودشان را میکوبیدند به شیشه ماشین. راننده برف را روشن کرده بود اما سرعت برف زیاد بود و برف نمی نمی‌توانست آنها را از روی شیشه پاک کند. سرعت ماشین کم شد. راننده سرش را به شیشه چسبانده بود تا از جاده خارج نشوند. ماشین باز هم از نفس افتاد. اما نه به خاطر خرابی و نقص بلکه این بار راننده نمی توانست جلوی خود را خوب ببیند سرعت خیلی کم شده بود اسماعیل از پشت شیشه به هاشیه جاده نگاه می کرد گرگ را دید دوان دوان از پشت سر آمد و شانه به شانه ماشین شروع به دویدن کرد خواست به راننده بگوید اما احساس کرد زبانش مثل چرم خوش کف دهانش افتاده و تکان نمی خورد. راننده هم از شیشه بغل به بیرون نگاه کرد و فریاد زد اینجا رو نگاه گرگ داره ما رو اسکورت میکنه. اسمایل هم توانست حرف بزند یکی هم اینجاست اینهاش. راننده به طرف او سرک کشید ماشین آنقدر آهسته پیش میرفت که گویی پیر مردی پیاده و خسته خورجینی را بر دوشش می و آهسته به خانه می مدتی همانطور رفت اسمایل نگاهش به بیرون بود گرگ هم پای ماشین می گاهی سر بلند می کرد و رو به بالا نگاه می کرد. چیزی نگذشت که گرگ دوم و سوم هم به او اضافه شدند راننده را مطلع کرد این طرف بیشتر شدن راننده در حالی که از زیر چشم به شیشه سمت خود نگاه می کرد پرسید چند تا شدن؟ 3 تا خنده تلخی کرد و گفت این طرف بیشتر شدن پنج تا هستن اسمایل وقتی بار دیگر به سمت خود نگاه کرد دید گرک های طرف او هم زیادتر شدهاند. آنها با هم مسابقه گذاشته بودند گاهی همدیگر را حل می دادند و خورناسه میکشیدند. سرعت ماشین آنقدر کم شد که دیگر گرک ها راحت از آن جلو میزدند و مقابل نور چراغ به این سو و آن سو دیگر ماشین ایستاده بود نشانی از جاده به چشم نمی‌خورد برف بیامان میریخت و برف با کنها کند و کمتوان شیشه را پاک می‌کردند گرک ها میکشیدند و اطراف ماشین میچرخیدند. تعدادشان زیاد شده بود. اسمایل با تعجب پرسید: این همه از کجا اومدن؟ باور کردنی نیست. ما الان این می دونی؟ نه نمیدونم اینجا کجاست. هیچی یادم نمیاد. من چرا اینجوری شدم اینگار خواب می بینم؟ گرک ها میکشیدند و در هم لولیدند. اسمایل پرسید: بنزین داریم؟ راننده به اقربهی بنزین نگاه کرده گفت کم، کم داری ماشینم نمیاد، خبری نیست با این ماشین نمیتونه بیاد حتما بقیه مثل ما گیر کردم موتور یک نفس روشن بود ماشین بیان که از جایش تکان بخورد میلرزید گاهی کند و گاهی هم تند راننده چشم به جلو دوخته بود و زیر لب نوه سرایی میکرد به نظر تعداد گرک ها از شمارش گذشته بود گروه گروه از مقابل نور ماشین عبور می و در هم می لولیدند. وقتی می از درون تاریکی وارد شعاع نور چراغ بشوند، ابتدا چشمهایشان میدرخشید بعد خودشان دیده می شدند. سپس آنها خارج می شدند و دسته دیگری می آمدند. این رفت و آمد پی در پی ادامه داشت. گویا راننده به گله گوسفندی نگاه می کرد که در حال عبور از عرض جاده بودند. نگاهشان می کرد و نه می خوند. صدایش کم کم اوج می گرفت. در همین حال اسمایل صحنه عجیبی دید نمی توانست باور کند مردی که پیش از این سوار ماشین بود گاهی میان گرکا دیده میشد. روی دو پا و بیشتر چهار دست گمان کرد دوچار توهم شده اما درست می دید. تردید نداشت خودش بود راننده را تکان داد اونجا رو راننده با همان سردی که بو یا چوپان گله را دیده باشد نوه خان تایید کرد. اسماعیل با تعجب گفت: چشمش برق میزنه. راننده دست روی بوق گذاشت. ماشین شیپور زد. صدایش در تاریکی پیچید. گرک ها به هوا پریدند و به تاریکی پناه بردند. اما باز هم سر و پیدا شد. هر بار که راننده بوغ و شیپوری ماشین را به صدا در میآورد، گورک‌ها در تاریکی گم می‌شدند و باز گشتند تا اینکه دیگر نترسیدند بلکه آنها هم وزوز ناگه ناگهان ماشین تکان خورد به هم نگاه کردند راننده سرش را بالا گرفت و گفت رفتن او ماشین معلوم بود که تعدادشان زیاد است تکانها بیشتر شده بود صدای پنجه هایشان از روی سقف میآمد، چراغ ماشین خود به خود خاموش شد بیابان در تاریکی خروب چرا چرا خاموش شد؟ راننده در حال دستکانی دکمه ها جواب داد نمیدونم. در همان حال در کاپوت باز شد و بالا آمد کمی بعد موتور هم از نفس افتاد ماشین دیگر تکان نخورد حالا تاریکی و سکوت همه جا را فرا گرفته بود بیرون صدای زوزه و خراش پنجه گرک ها روی سخف شنیده میشد. راننده آه کشید به به چه اوزایی شد گرک ها دست جمعی روی باربند پریده بودند و راه می رفتند اسمایل گفت: مثل اینکه خواب می‌بینم. راننده در تاریکی گفت: شایدم تازه بیدار شدی و دیگه خواب نیستی. در همین وقت شیشه سمت راننده شکست و تکیه ای آن پاشی توی اتاق. و به دنبال آن دستی از بیرون دراز شده در لباس کرد راننده با عجله خم شد تا میلش را از زیر صندلی بیرون بکشد، اما همان دست یقه او را گرفت و به کمک چند گرگ دیگر از ماشین بیرون کشید و انداخت روی برد طوفان حجوم بر داخل اوتاقی زوزه گرگ ها در همه می خدود صدای خنده و خورناسه شنیده شد کسی فریاد کشید و گفت یا اول صدایش بلندتر از همه بود بلندتر از زوزه بلندتر از خورناسه بلندتر از خنده و بلندتر از هیاهوی طوفان نایهان همه جا در سکوت فرو رفت حتی طوفان هم از نفس افتاد اسمایل میله را برداشت و از در سمت دیگر بیرون پرید از گرگ ها خبری نبود همه رفته بودند تنها جای پایشان روی برف مانده بود هرچه به دنبال راننده گشت پیدایش نکرد در دور دستها کسی نه میخواند. میله به دست ایستاده بود جلو ماشین و چشم دوخته بود به تاریکی. نه برق نگاه گرگی را دید و نه صدایش را شنید مثل برف آب شده و رفته بودند زیر زمین